صفحه 1022. در این هنگام که ندیمه های جوان و زیبای شاهزده خانم از خواب بیدار شده بودند باافت زده به یکی مینگریستند نگریستند زیرا با وجود چندین خاجه در تالار نگهبانی که عبور از آن محل را دشوار می‌ساخت، تگونه چنین جوان بلند قدر خوش سیما توانسته مخابگاه و حتی بستر شاهزده خانم راه یابد اما همین که شاهزاده خانم دستور پذیرایی از شاهزاده فیروز را صادر کرد، هر یک از ندیمه‌ها به کاری پرداختند. یکی به آشپزخانه رفت تا از بهترین گوشت تازه پرندگان خوشمزه ترین خوراک ها را فراهم کند. دو تن دیگر پیش و پیش شاهزاده حرکت کردند تا خوابگاه او را نشان دهند و تعدادی هم ملافه های تازه و لطیف روی تخت جای میدادند و شماری از آنها هم شمع گچی بلند و زیبایی را افروختند و در مدت کوتاهی سفره رنگین انباشته از انواع خوراکی‌های لذیذ برای شاهزاده گستردند و همگی آماده پذیرایی او شدند در همین گفت و شنود کوتاه با شاهزاده فیروز شاهزاده خانم بنگال از ادب و فهم و قامت و سیمای شاهزاده به اندازهای خوشنود شده بود که خواب از او رو بوده شد و وقتی ندیمه های او به خوابگاهش برگشتند شاهزاده خانم پرسید آیا پذیرایی کافی از شاهزاده به عمل آمد سرانجام نظریه ندیمه‌های خیشا درباره شاهزاده جوییا شد, شد. ندیمه‌ها به پرسش‌های شاهزاده خانم پاسخ دادند و در مورد پرسش آخری گفتند به عقیده ما در سراسر کشور بنگال و کشورهای همسایه شاهزاده مانند این شاهزاده ایرانی وجود ندارد و اگر پادشاه بنگال پدر شما موافقت کند شما با این شاهزاده ازدواج کنید شما به خوشبختی خواهد رسید شهستات خانم که با عقیده آنها قلبا موافق بود ولی نمیخواست آن را ابراز کند حرفی نزد و به ندیمه ها دستور داد به بسترهای خود بروند و او هم میخواهد استراحت کند روز بعد وقتی شهستات خانم از بستر بیرون آمد در برابر آینه به آرایش خود پرداخت و بیش از هر زمان دیگر درباره آرایش و پوشاک و جواهرات خود از ندیمه نظر میخواست. و فرعیکرد به بهترین بجه آرایش خود را تکمیل کند و بهترین امااس خود را به صورت گردن بند و گوشواره و کمربند کار برد و زیباترین و خوش رنگترین خود را که ویژه شاهان و ملکه ها و خانم خانمهاست پوشید و به تمام معنا در زیباتر جلوه دادن خود کوشید و مرتبا از ندیمه های خود میخواست که با دقت او را نگاه کنند و چنانچه نقص و کمبودی میبینند به او تذکر دهند، و شاهزاده فیروز هم بعد از بیدار شدن و آماده ساختن خود اجازه خواست تا به دیدن خانوم برود و ارض ادب كند خانوم که شاهزاده فیروز را از هرجهت هر شایسته همسری خود میدید میخواست تا آنجا که ممکن است او را در نزد خود نگه دارد تا بیشتر مهر خود را در دل شاهزاده فیروز جای دهد و از طرف دیگر میل داشت شاهزاده را برانگیزد تا با دیدن پدرش پادشاه بنگال در پایتخت کشور برود و با دیدار شاه به شایستگی و برازندگی شاهزاده پی ببرد و او را به دامادی خود بپذیرد و پیوند دوستی بین دو کشور برقرار شود و سوی دیگر شاهزاده هم شکوه و زیبایی قصر سلطنتی پادشاه را ببیند ولی شاهزاده فیروز پاسخی را که مورد انتظار شاهزاده خانم بود به او نداد اما از شاهزاده خانم پرسید که بهتر نیست برای نخستین دیدار از پادشاه بزرگی چون پدر تو با ملازمین و تشریفات سلطنتی به دیدار پادشاه بروم تا اینکه و تنها و بدون تشریفات لازم شاهزاده خانم پاسخ داد: ای شاهزادهی عجمند از این جهت نگرانی به خود راه نده زیرا در این کشور همه گونه امکانات موجود است و من میتوانم تشریفات و لوازم و ملازمان مردنظر تو را خودم برایت فراهم کنم و آن وقت با همان تشریفات و گروهی که میخواهی به دیدن پدرم بروی شاهزاده با شنیدن سخنان شاهزاده خانم فهمید که شهستاد خانم انقدر او را دوست دارد که برای هر گونه خدمت و فداکاری آماده است و این احساس موجب شد که چوله عشق او تیزتر شود آنگاه به شاهزاده خانم گفت من خود را ملیون های شما میدانم و سمیمانه از پیشنهادتان سپاس گذارم ولی من است که پدرم را ترک ام و او از من بی‌خبر و نگران است خصوصاً که با این اسب پرنده پرواز ام. اجازه بده من به کشورم برگردم ولی من با تمام وجود عاشق شما هستم و در هر کجا باشم در قلب من خواهی بود و واشا نمی‌توانم عزیزت خود را دور از تو حس کنم پیشنهاد می‌کنم به اتفاق یکدیگر بر این اسب پرنده سوار شویم و به ایران برویم و بعد از انجام مراسم زناشویی به پادشاه بنگال جریان را اطلاع دهیم. آنگاه شاهزاده خانم از شاهزاده فیروز خواست توضیحاتی درباره ایران بدهد. شاهزاده گفت ایران امپراتوری بزرگی است که کشورهای مختلفی را در بر می‌گیرد و دارای نیروی نظامی بسیار توانایی است که با سپاهیان ورزیده و انبوه خود بر هر کشوری برتری دارد. دارای استان‌ها و شهرهای بیشماری است. و کو متعددی در شهرهای مختلف بنا است که همه اوقات سال آماده پذیرایی است و وسایل و لوازم کامل در همه کارخواب فراهم میباشد شاهزاده خانم پاسخ با داد بغداد کشور زیبایی است ولی هرگز داریان وسعت و قدرت و ثروت کشور ایران باشد و من دوست دارم که به ایران بیایم شاهزاده فیروز گفت می توانیم با این اسب در مدت کوتاهی به ایران سفر کنیم و بعد از برگزاری مراسم زنشویی و پیوند بین دو کشور به نام شاهزاده ایرانی سفری به بنگال خواهیم کرد پدر من در مورد انتخاب همسر مرا آزاد گذارده و من به او خواهم گفت در مدت اقامتم در کشور بنگال نهایت پذیرایی توسط شاهزاده خانم از من به عمل آمده است و پدرم از زنشویی من با شاهزاده خانم بنگال بسیار خوشنود خواهد شد با شدیدن سخنان شاهزاده شاهزاده خانم مخالفتی نشان نداد و با سکوت خود عملا موافقتش را ابراز داشت هر دو با بازگشت به ایران توافق داشتند و تنها نگرانی عدم آشنای شاهزاده فیروز متأز کار کردن از به سرامیز بود که همه دستگاه را درست شناخت. ولی به هر حال تصمیم گرفته بود با آن وسیله به ایران سفر نمایند و به پای تخت کشور که در نزدیکی شیراز واقع شده بود وارد چوند فجر صبح قبل از طلوع آفتاب شاهزاده فیروز و شاهزاده خانم هر دو سوار بر اسب سهرامیز شدند و شاهزاده خانم دستهای خود را دور کمر شاهزاده فیروز قلاب کرد و شاهزاده میخ چوبی را فشار داد در یک نسل دست با به پرواز درآمد و در مدت کمتر از دو ساعت وارد ایران شد ولی شاهزاده مستقیما به محوطه وسیع کاخ بزرگ سلطنتی فرود نیامد بلکه در کاخ دیگری که در نزدیکی های آن بود و اختصاصی شاهزاده به شمار میآمد فرود آمد در آنجا نگهبانان و افسران و ملازمان به حضور شاهزاده آمدند و از دیدن مجدد او ابراز خوشنودی کردند آنگاه شاهزاده شاهزاده خانم را به رئیس نگهبانان کاخ سپرد و از هر جهت سفارش کرد تا در خدمت خانم باشند و آنچه لازمه احترامات شایسته و های بایسته است درباره او به عمل آورند شاهزاده قصد که به دیدار شاه برود وقتی به حضور شاهنشا میرفت در مسیری که او حرکت میکرد مردم شهر از شادی خوشنودی بازگشت او دست میزدند و هر هلحله میکردند مردم در قیبت طولانی او به سوگواری نشسته بودند و شاهنشاه به خاطر دو ماه بیخبری از شاهزاده فیروز مرگ او را حتمی فرض کرده و سوگواری همگانی اعلام کرده بود. اما اینک همه غرق شادی و شکفتی بودند زیرا شاهزاده را زنده و سالم می دیدند. شاهنشاه از دیدن فرزند خود خدا را سپاس گفت و او را در آغوش گرفت و سبب این مدت بیخبری و شرح پرواز را از او پرسید. شاهزاده هم آنچه را که برایش در این مدت رخ داده بود شرح داد و درباره ی قصد ازدواج خود با شاهزاده خانم نخلر شاه بنگال و, پ... و پذیرایی های او توضیحات کافی داد و گفت اینک شاهزاده خانم را همراه خود با اسب شهرامیز به قصر اختصاصی آورده است شاه پس از شنیدن سرگذشت شاهزاده فیروز با کمال خوشنودی و خوشحالی گفت من نه تنها با ازدواج تو با این شاهزاده خانم موافقم مگر خودم شخصاً به دیدن او به وقت خواهم رفت زیرا او با پذیرایی و مراقبت‌هایی دست و کرده است مرا مرهون هایی خود کرده در این هنگام شاه دستور داد که عزاداری را به جشن سرور همگانی تبدیل کنند و به آگاهی مردم و اهالی کشور برسانند شاهزاده صحیح و سالم به کشور بازگشته و به این مناسبت همه جا را چراغانی کنند و به شادی بپردازند آنگاه فرمان داد مرد هندی را از زندان به حضور آوردند و به او گفت خدا را شکر کن که تو را نکشته و خوشبختانه شاهزاده مراجعه کرده است این از آزادی و از اینجا به هر کجا بخواهی میتوانی بروی ولی دیگر به این کشور برنگرد مرد هندی می کرد و از حضور شاه مرخص شد ولی چون آگاهی یا شاهزاده خانم در کدام به سر میبرد و اصل سهرامیز هم در چه محلی نگهداری میشود؟ قرار خود را به قصر رساند و به نگهبان قصر گفت اینک شاهنشاه و شاهزاده و کلیه دربانیان و اعیان انتظار دارند من زاده خانم را در کنار خود روی عثبه سرامیز جای دهم و در حضور همگی به نمایش پردازم رئیس نگهبانان قصد که میدانست این مرد از زندان آزاد شده به سخنانش اعتماد کرد و او را به نزد شاهزاده خانم بنگال برد شاهزاده خانم که از موضوع خبر بود درخواست مرد هندی را با خوشویی پذیرفت. زیرا تصور می‌کرد شاهزاده فیروز او را فرستاده که شاهزاده خانم را نزد او راهنمایی کند. مرد هندی بسیار خوشحال شد، زیرا می‌دید به سهولت می‌تواند انتقام خود را از شاهزاده فیروز و پادشاه که با او بازفداری کرده و او را به زندان افکنده است بگیرد. اول به سراغ قصریزمیز رفت. و با کمک رئیس نگهبانان شاهزاده خانم را پشت سر خود سوار بر اسب کرد و سپس میخ توبی را فشار داد و اسب به سوی آسمان پرواز کرد در این هنگام پادشاه که با دربانیانش به قصی میرفت که شاهزاده خانم در آنجا بود و شاهزاده فیروز هم جلوتر حرکت کرده بود تا به شاهزاده بگوید چگونه به پادشاه به گفتگو پردازد ناگهان در بالای سر خود اسل سهرامیز را دیدند که مرد هندی شاهزاده خانم را رو بوده و در روی اسب نشانده و فرار میکند وقتی پادشاه چنین ای را دید از شدت خشم بر خود میپیچید زیرا به فرد دسترسی به این مرد جسور و گستاخ را نداشت هزاران دشمن به او فرستاد و همه درباریان هم که میدیدند او مرتکب چه بی حرمتی بزرگی به پادشاه و خانواده او گردیده است به او ناسزا میفرستادند مرد هندی ناسا ظاهر رو شنید و به پرواز خود ادامه داد و شاه که وسیله برای کیفر او نداشت با ناراحتی بسیار به قصد خود مراجعت کرد. و اوحال شاهزاده فیروز از همه بدتر بود. از یک سو گرفتار سرزنش وجدان خود بود که بیموبالاتی در نگهداری و مراقبت شاهزاده خانم کرده بود. از سوی دیگر دلداده عزیز خود را که به حد پرستش دوست می داشت از دست داده بود. غم بزرگی بر سینه‌اش سنگینی میکرد دمی فکر می کرد خود را زندانی کند و به گریه و حسرت بگذراند لحظه‌ای دیگر با خود میگفت بهتر است تا دورترین نقاط دیتی به دوی عشق شدهام پردازم و هر گونه سختی و در بدری را به خود راه دهم عاقبت شاهزاده رئیس نگهبانان را فراخواند و به او فرمان داد تا هرچه زودتر لباس کامل درویشی برای او فراهم سازد رئیس نگهبانان خود را به سجده انداخت و گریه آغاز کرد و اتماس درخواست مرگ خود را کرد. زیرا خود را مقصد می و با ساده لوهی خود شاسد خانم را تحلیل مرد هندی داده بود. از بی خود احساس شرم میکرد. می کرد. فیروز به رئیس نگهبانان گفت تقصیر با من است. من. من مراقبت کافی درباره باری شاسد خانم نکردم و من خودم باید مجازات شوم. به هر حال رئیس نگهبانان با یکی از شیوخ درویشان دوستی سمیمانه داشت فورا نزد او رفت و یک دست لباس کامل درویشی از او گرفت و, و آن را به حضور شاهزاده آورد شاهزاده لباس درویشی را فورا برتن کرد کاملا قیافهاش به شکل ناشناسی تبدیل گردید بعد جبه جواهراتی را که برای شاهزاده خانم بنگالی هدیه آورده بود به همراه برداشت و شبانه بیست سر اسدا از قصب بیرون رفت و راه بیابان در پیش گرفت بدون آنکه بداند به کجا می رود ولی با خود گفت موقعی به قصب را جد می کنم که دلداری گم شده خود را یافته باشم حال برگردیم به مرد هندی را شاهزاده خانم بنگالی این مرد که آنچنان با سرعت به پرواز خود ادامه داد که خیلی سریع به پایتخت کشمیر بر زمین فرود آمد زیرا گرس نش بود و فکر میکرد شهزاد خانم هم باید گرست نباشد در میان جنگل اموهی به زمین نشست آنجا قطع زمین بزرگی بدون درختی بود که نهر آبی هم در آن روان بود مرد هندی شهزاد خانم را به حال خود گذاشت و دنبال تهیه چیزی برای خوردن رفت. وقتی شهزاد خانم تنها شد به بخیف افتاد که از چنگ این مرد حقوق باز و شیاد فراغ کند اما برا سر گرسنگی آنچنان ناتوان و رنجور بود که نمی توانست و قدرتی نداشت که بدود و فرار کند بعد از مدتی کوتاه مرد هندی غذای آورد که شخصاد خانم هم با آن رفع گرسنگی کرد و نیروی تازه احساس کرد مرد هندی شخصاد خانم را تهدید کرد که باید خود را به او تسلیم کند اما شخصاد خانم آشغان شخصاد فیروز را دوست می داشت و با او پیمان بسته بود و حاضر بود در برابر این مرد هندی به هلاکت رسد تا آنکه تسلیم خواهش او گردد بنابراین با تمام قوای خود به مقاومت برخاست و شیور و فریاد براهنداخت طولی نکشید که گروهی از سواران سلطنتی شاه کشمیر در راه بازگشت از شکارگاه با شنیدن فریاد شاهزاده به نزد او آمدند سلطان کشمیر که پیشاپیش گروه حرکت میکرد خطاب به مرد سیاه هندی گفت تو کیستی و با این خانم چه نسبتی داری؟ او پاسخ داد که این بانو همسر من است. شاهزاده خانم به سلطان گفت: من نمیدانم که شما چه مقامی دارید و چه کسی هستید، اما این مرد شاید بیش نیست و شرح ماجرا را برای سلطان بیان کرد. زیبایی و متانت و ظاهر آراسته شاهزاده خانم هم نشان میداد که او درست میگوید و سلطان را تحت تاثیر قرار داد. سلطان هم دستور داد که مرد هندی را فورن گردن زنند و به همین ترتیب هم ملازمان سلطان مرد هندی را گرفتند و به هلاکت رساندند. اینک شاهزاده خانم از آزار و شرارت مرد هندی رهایی یافته بود اما گرفتار مزاحم جدیدی که همان سلطان کشمیر بود گشته بود. سلطان دستور داد اسبی برای شاهزاده خانم آوردند و او سوار بر اسب شد و همراه سلطان ملازمان او مسوی قصد به هرхать در آمدند وقتی به قصر وارد شدند سلطان شخصا تالار بسیار اشرافی و زیبایی را در اختیارش گذاشت و تعدادی ندیمه های جوان و چند خاجه هم در اختیار شاهزاده خانم گذاشت و گفت فعلاً شما احتیاج به استراحت دارید من فردا صبح نزد شما خواهم آمد تا سرگذشت خود را برایم شرح دهید شاهزاده خانم بسیار خوشحال بود که از چنگال مرد هندی رهایی یافته و پیش خود تصور میکرد وقتی خود را برای سلطان کشمیر بیان کند حتما او را به نزد شهریار ایران خواهند فرستاد اما بعد از آن که خود را برای سلطان بازگو کرد سلطان گفت که او خودش میل دارد با شاسات خانم پیوند زنوشوی برقرار کند و روز بعد را هم برای برگزاری مراسم در نظر گرفت و فرمان داد تا همزمان با طلوع خورشید، در همه محله های شهر به شادی بپردازند و اعلام شادی همگانی به این مناسبت یعنی به مناسبت زناشویی سلطان و شاستاد خانم بنگالی کنند صبح روز بعد کنیزان و ندیمه ها به حضور شاهزاده خانوم آمدند. و اعلام کردند امروز روز جشن ازدواج شما با سلطان کشمیر است. و به آنها دستور داده تا شاستاد خانوم را لباس بپوشانند و آرایش کنند و برای شایست در مراسم آماده سازند. بعد از مدتی کوتاه سلطان به تالار شاهزاده خانم آمد، و از حال تندرستی او جویا شد و گفت: میخواهم با تشریفات کامل این جشن فرخنده برگزار شود و بهترین تدارکات برای جشن و پذیرای میهمانان دیده شده است. وقتی شاهزاده خانم متوجه شد که تمام این هیاهو و سر و بسیار برای برگزاری جشن ازدواج او با سلطان کشمیر است، دقیقه این خبر برای یک دهنده بود که بلافاصله از هوش رفت و روی مبل افتاد. ندیمه ها اطراف شاهزاده خانم جمع شدند و خود سلطان کشمیر هم آمد تا او را به هوش آورند. مدتی به طول کشید تا شاهزاده خانم به هوش آمد و همین که با خود فکر کرد سلطان کشمیر بدون آنکه با او صحبت کند و رضایتش را برای زن‌شویی به دست آورد، که برگزاری جشن عروسی با او را دیده است. و که او به این زناشویی تن در دهد، پیمان چکنیم با شاهزاده ایرانی خواهد بود، به این نتیجه رسید که برای رهایی از این مشکل، بهترین راه حل آن است خود را به دیوانگی بزند و همین کار را هم کرد. یعنی شروع کرد به پرت و پلاگویی و, و سخنان بی رفت گفتند گفتن. سلطان کشمیر از حالت دیوانگی شاهزاده بسیار نگران شد و خودش به نزد او آمد. ولی شاهزاده حالت هجوم به خود گرفت. و میخواد چشمهای او را از کاسه بیرون آورد سلطان پزشکانی درباری را فراخواند، و از آنها چاره جویی کرد آنها هم از دور بیمار را میدیدند و داروهایی تجویز میکردند اما هیچ خودم از آنها اثری نداشت زیرا شدت یا زف بیماری بستگی به اراده خود شاهزاد خانم داشت سلطان ناچار شد از کلیه پزشکان بزرگان کشور یاری بخواهد از پزشکان میآمدند ولی نمی توانستند نمیتوانستند بهبود حال شاهزاده گامی بردارند سرانجام سلطان معمولی به دربار شاهانه کشورهای همسایه خود فرستاد و از پزشکان آنها یاری جست پزشکان خارجی به کشمیر آمدند و شرحی که شاهزاده را جویا شدند ولی لازم دانستند او را, را از نزدیک معاینه پزشکی کنند وقتی شاهزاده خانم متوجه شد که این پزشکان میخواهند او را معاینه و وناظر او را لمس کنند اجازه به پزشک نداد و به آنها حمله ور شد پزشکان هم از ترس جان خود در برابر چنان دیوانه ای جرأت نزدیک شدن به شاهزاده نکردند و از دور او را دیدند و دارویی برای او نوشتند حالت روحی شاهزاده خانم شبهر شدید میشد ولی روزها نسبتا بهتر و آرامش بیشتری نشان میداد پزشکان معتقد بودند که دیوانگی درجاتی دارد و جنون این خانوم از نوع شدید آن در این فاصله هم شاهزاد فیروز که خود را به شکل درویشی درآورده بود از شهری به شهری در جستجویی شاهزاد خانوم میرفت بدون آنکه مقصد مشخصی را در نظر داشته باشد عاقبت به یکی از شهرهای عمله هندوستان رسید از هر کسی سراخ شاهزاد بنگال را میگرفت تا اینکه شنید همه مردم شهر دربارهٔ شاهزاد خانومی صحبت میکنند از اهالی بنگال است و در شب عروسی خود با سلطان کشمیر گرفتاری جنون شده است وقتی نام شاهزاده خانم و نام بنگال به گوشش رسید تمام حواس خود را متمرکز کرد و پیش خود گفت فقط یک شاهزاده خانم بنگالی وجود دارد و او هم حتما همان زیبارویی است که با من پیمان بسته است باید به سوی کشور است. کشمیر پار گردم سرانجام شاهزاده فیروز وارد کشمیر شد و در مسافرخانه‌ای اقامت گزید. در آنجا شنید که سلطان کشمیر شاهزاده را از چنگ مرد هندی که او را ربوده بود رها کرده و مرد هندی را هم کشته و خود میخواسته با شاهزاده عروسی کند که متأسفانه شاهزاده دیوانه میشود و پزشکان از درمان او عاجز ماندند. شاهزاده ای ایرانی که این خبر را شنید، لباس پزشکان برتن کرد و به سوی قصر سلطان کشمیر راه گردید. وقتی به آنجا رسید، به رئیس نگهبانان گفت: من پزشکی هستم از راه دور برای درمان شاهزاده خانم آمدم. شاهزاده گفت: میدانم سایر پزشکان کاری از پیش نبرده‌اند، ولی من با های پزشکی خود اطمینان می‌دهم که شاهزاده را درمان خواهم کرد. رئیس نگهبانان بسیار خوشحال شد و گفت: سلطان با خوشبختی فراوان به شما خوش خواهد گفت و اگر شاهزاده را به حالت طبیعی خود برگردانید.» او پاداش ارزندهی به شما خواهد داد و اگر یک لحظه در اینجا منتظر بمانید من فوراً برمیگردم. نگهبان به حضور سلطان دفت و سلطان که مدتها بود امیدش را از دست داده بود به محض شنیدن خبر ورود پزشک تازه خواست که او را هرچه زودتر به حضور آورند شاهزاد فیروز را به نام پزشک به سلطان کشمیر معرفی کردند و او هم بدون تلف وقت شرح حال کامل شاهزاده را از روز اولی که او را دیده بود تا روز جشن ازدواج و گفتگوی خود را با او و همچنین سخنان میراث شاهزاده را بیان کرد و گفت این بیمار نسبت به پزشکان حساسیت دارد و همین که پزشکی در برابر او نمایان گردد حالت دیوانگی او شدت می‌یابد به همین دلیل شما را به اتاقی میبرم تا از پنجره آن اتاق بیمار را ببینید و نظریه خود را ابراز کنید شاهزاده فیروز از پنجره نگاه کرد و مشوق نازنین دید که با حالت افسرده در گوشه‌ای نشسته و برای خود زید لب آبازی را زمزمه می کند و حالت آشوبی را داشت که مشوق خود را برای همیشه از او دور کرده باشند. شاهزاده که مشوقه را در آن حالت زار و آشقانه دید، مطمئن شد که ناآرامی او فقط به خاطر عشق است و بس. دلش به حال او سوخت و به سلطان گفت: با حالتی که از این بیمار می بینم. اطمینان دارم که کسالت روحیش قابل درمان است من نوعی کسالت او را روی تجربه طولانی خود تشخیص دادم و لازم است من به تنهایی شخصا با او صحبت کنم و امیدمان است که مرا را بپذیرد و ناراحتی نشان ندهد سلطان فورا دستور داد در اتاق شاهزاده خانم را گشونند و شاهزاده فیروز وارد اتاق شد همین که او قدم به درون اتاق گذاشت و چشم شاهزاده خانم به پزشک افتاد که لباس پزشکی بر تن دارد حالش تغییر کرد و خشکین گردید و مناستها گفتن آغاز کرد و میخواست به پزشک حمله برگردد اما شاهزاده به او نزدیک شد و با صدای بسیار آهسته به او گفت من پزشک نیستم من شاهزاده فیروز هستم که برای تو به اینجا آمدم شاهزاده خانم که لحن کلام شاهزاده ایرانی را می‌شناخت و با چشمان و سیما و پیشانی بلنده او آشنا بود با وجودی که ریشه بلندی تمام هایش را پوشانده بود او را شناخت و ناگهان آرام شد و شادی مرموزی سراسر وجودش را فرا گرفت در... که در چهره‌اش پریدار بود و از حضور ناگهانی شاهزاده ایرانی در دربال سلطنتی شاه کشمیر آن هم در لباس پزشکی تا آن حد حیرت زده شد که تا چند ثانیه قدرت سخن گفتن از او سلب گردید و در این مدت فرصتی به شاهزاده فیروز داد تا به شاخصاد خانم بگوید وقتی به بودن او را توسط مرد هندی در قصد پدرش مشاهده کرد از فرط یه و در به آوردن دوباره او چلت می به او وارد شده و تصمیم گرفته در لباس درویشی تمام شهرها و کشورها را زیر پا گذارد و تا وقتی که شاخصاد خانم را نیابد به خود باز نگردد تا آنکه بخت با او یاری کرده و به کشمی می‌آید. و در لباس پزشکی به قصر سلطان راه می‌یابد. آخرین سخن او به شاهزاده خانم این بود که آماده باش. من تا را از این وضع نجات خواهم داد و ترتیب فرارمان را میدهم بعد از آن شاهزاده خانم بنگال توضیح داد که چگونه و توسط سلطان کشمیر از دم مرد هندی خلاصی یافته و چگونه سلطان او را به قصر آورده و با آن شتاب قصد انجام ازدواج با او را داشته. و او هم برای وفایی به عهد خود با شاهزاده در برابر تمایلات سلطان ایستادگی کرده و به خاطر سرنگرفتن ازدواج خود با او خود را به دیوانگی زده است و این تنها راه پیروزی برای حفظ خود و پیمان خود با شاهزاده بوده است بعد از سخنان شاهزاده خانم شاهزاده فیروز درباره اینکه در حال حاضر از سهرامی را در کجا می توان پرسش هایی کرد شاهزاده پاسخ داد پس از به هلاکت رساندن مرد هندی نفهمیدم بر سر اسب صهرآمیز چه آمد ولی میدانم سلطان باید ترتیبی برای نگهداری آن داده باشد شاهزادهٔ ایرانی به شاهزاده خانم گفت تنها وسیله‌ای که میتواند ما را سریعا به پایتخت کشور ایران برساند همان اسب سهرامی است سپس آن دو درباره اجرای نقشه سفر به ایران و جزئیات آن و اتمادی که قبلا با اینجا بنمایان با یکدیگر گفتگو کردند و قرارشان بر این شد که شاهزاده خانم لباس مرتب و زیبایی بپوشد ولی با کسی صحبت نکند اما رفتاری محترمانه و معدبانه با سلطان داشته باشد وقتی شاهزاده ایرانی برای سلطان توضیح داد که نخستین ملاقات او با شاهزاده خانم چه نفیجی به بار است سلطان غرق در شدی شد و وقتی رفتار مؤدبانه و عادی شاهزاده خانم را بعد از ملاقات با پزشک دروغی ملاحظه کرد یقین حاصل نمود که این پزشک بسیار دانا و با تجربه است زیرا در نخستین دیدار این همه پیشرفت در وضع روحی شاهزاده خانم حاصل شده است به او تأکید کرد که دستورات پزشک را به طور دقیق رعایت کنند تا بهبودی کامل حاصل گردد شاهزاده زن گزارش معاینه خود از بیمار به سلطان از او پرسید شاهزاده خانم چگونه توانسته است این فاصلهی دراز را از کشور بنگال تا کشور کشمیر طی کند؟ سلطان پاسخ داد که شاهزاده خانم این مسافت را با وسیلیه‌ای که آن را اسب سهرامیز مینامند پیموده است. این پرسش را شاهزاده عبدان مطرح کرد تا اجاره‌ای به اسب سهرامیز و به اینکه این وسیله این وسیلیه یا شده در کجا قرار دارد بشود. سلطان توجهی به قصد شاهزاده درباره اسب سهرامیز نداشت. از روی سادگی پاسخ داد بعد از که این اسب شاهزاده را به این آورد دستور دادم آن را در خزانه سلطنتی نگهداری کنند مگر چه استفاده از آن را نمیدانیم. بعد از اینکه سلطان از اسب سهرامیز نامی برد شاهزاده گفت از این اسب توان در معالجه شاهزاده خانم استفاده کرد نظر به اینکه اسب وسیله پرواز و انتقال شاهزاده خانم بوده است که جنبهی سهرامیز داشته است لذا همین حالت سرامیز بودن هم اثری روی شانسادخانم گذاشته که من می‌توانم